برلین آلمان هشت فوریه 1993. یک هفته از پایان مزایده و فروش ویولون میگذشت تلفن دفتر هیلموت زنگ خورد منتظر این تماس بود آقای هیلموت صدای پشت تلفن را شناخت بله چیزی که توافق کردیم رو آماده کردیم بله پس امروز ساعت چهار تو پارک ملی می‌بینمتون. این مکالمه درست مثل تماسی که حدود یک ماه پیش با او گرفته شده بود، کوتاه و مختصر بود. آن روز هیلمود از شن... با شنیدن صدای تلفن، صدای زنگ تلفن غافلگیر شده بود. آقای هیلموت؟ بله، شما مهم نیست من کی هستم. مهم اینه که من میتونم حکم پرونده ی ویولون رو به نفع موکل‌های شما برگردونم. هیلموت سعی کرد آرامش خود را حفظ کند. با لحنی محتاطانه گفت: تا ندونم چه کسی پشت خط تلفن هست حرفی نمیزنم و قطع میکن ساعت 4 در باغ وحش پارک منتظرتم اونجا همه چیز رو بهت میگم مدارکی هم که لازمه رو بهت نشون میدم ساعت 4 عصر پارک ملی قبل از اینکه هیلموود جوابی بدهد تلفن قطع شد با اینکه از این تماس... با اینکه از این تماس عجیب خیلی عصبانی شده بود اما نتوانست آن دعوت رو ندیده بگیرد در روز مقرر به محل ملاقات رفت. نمی دانست چه کسی رو ملاقات خواهد کرد و نمی دانست این چه اطلاعات و مدارکی است که می‌تواند به او جهت موفقیت در پرونده ی ویولون استرادیواری کمک کند. ملاقات به همان کوتاهی مکالمه تلفنی بود. هیلمود به اهمیت معامله پیشنهادی واقف بود و می‌خواست اهمیت بسته شدن هر چه سریع تر این پرونده را به گریتا و لیلی هم تفهیم کند. سعی کرد به آنها بقبولاند. مبلغی که پرداخت خواهند کرد در مقایسه با ضرر از دست دادن ویولون و شکست در پرونده بسیار ناچیز خواهد بود. باغبانی برلین یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های دنیا است و پادشاه فدریک ویلیام و همسرش مؤسس آن هستند. این پارک نیز مانند هر مکان دیگری در برلین با بمباران متفقین در جریان جنگ جهانی دوم ویران شد. زمانی که شهر به دو قسمت تقسیم شده بود هر بخشی یک بوستان مخصوص به خود را داشت بعد از اتحاد دوباره آلمان پارک اصلی رونق خود را بازیافته و بوستان بخش شرقی اهمیت خود را از دست داده بود هیلموت قبل از موعد به آنجا لسید. یک کیف مشکی که تاخرخرره پر شده بود در دست داشت نگران بود میترسید کسی در حال تعقیب او باشد در بین راه چند بار خط قطار را عوض کرد دائم اطرافش را میپایید تا دو کسی مراقبش باشد. وقتی به باغ رسید از اینکه لباسش را تغییر نداده بود پشیمان شد. او همیشه کت و شلوار با کراوات میپوشید. به یکی از کافه های پارک رفت. روی یک صندلی نشست و یک لیوان مشروب سفارش داد. دائم به ساعت نگاه می کرد تا اینکه عقربه ها بالاخره به زمان ملاقات نزدیک شد. کمی احساس گناه می کرد. هر چند سعی می کرد به خودش اطمینان دهد کاری که می خواست انجام دهد. به هیچ وش غیر غیرقانونی نیست و تعهدات کاریش به عنوان یک وکیل را زیر سوال نمیبرد. شاید با این کار کمی از مرزهای اخلاقی فراتر میرفت، اما مرتکب جرم نمیشد. پرونده استرادیواری بزرگترین و مهمترین پرونده بود که او روی آن کار کرده بود و ترجیح می داد نتیجه نهایی پرونده این باشد که موکلانش در پایان مزایده ده میلیون دلار از فروش آن ارسیه با ارزش خود به بیاورند. موقع رفتن کمی تردید داشت که نکند کارش غیرقانونی باشد. اما به خود گفت این مبلغ از آن دست هزینه است که به طور معمول در معاملات گریزی از آن نیست. در واقع است بین دو طرف معامله که هیچ کدام از طرفین این زرر نکنند. یادش آمد وقتی موضوع این پیشنهاد را به گیریتا و لیلی گفت آنها به شدت تعجب کردند و پرسیدند این واقعا حق ماست یا اینکه پدربزرگ ما اون رو به زور از صاحبش گرفته شک نکنید که حق شماست پس چرا باید برای چیزی که هیچ شکاشاپی در موردش وجود نداره این همه هزینه بدیم خب خیلی پیش میاد که ما برای دست آوردن چیزی که حتی هیچ دعوی حقوقی هم نداره چندین بار چ این هزینههایی پرداخت کنیم اگه قضیه لوبرچی این دیگه مشکل شما نیست این مشکل اونیه که برای گفتن حقیقت پول خواسته. من البته مدارک لازم رو آماده می‌کنم <تصفيق> که نشون میده شما با رضایت خودتون این مبلغ رو هدیه کردین بدون اینکه در ازای اون چیزی دریافت کرده باشین. گریتا و لیلی با پیشنهاد او موافقت کردن. آنها قانع شدن چون <تصفيق> میدانستند قیمت نهایی فروش فراتر از انتظار خواهد بود. پس اشکالی نخواهد داشت اگر با پرداخت بخشی از آن، خیالشان بابت بسته شدن پرونده راحت شود و بتوانند دوباره ویولون را در یک مزایده جدید به نمایش بگذارند. هیلموت بعد از سالها کار به عنوان وکیل دریافته بود که آرمانهای مردم معمولاً پشت درخشش برق ثروت گم می شود. انتظارش در باقه زیاد طولانی نشد. شخصی که منتظرش بود خیلی زود پیدایش شد. با قدم های اصفار به نزدیک شد و بلافاصله سلام کرد. نگاهش روی کیف هیلموت قفل شد. توی این کیف ست هزار هست. همون مبلغی که خواسته بودیم. یک میلیون دلار مابقی هم طبق برنامه به حساب بانکیتون در نیویورک وار... نیو واریز میشه. رسید پرداخت هم در یه پاکت داخل کیف هست. راشل آرام گفت متشکرم. با خونسدی دست درست کرد و کیف را برداشت. سپس پشتش را به او کرد و از راهی که آمده بود بازگشت. چند قدم بر نداشته بود که دوباره برگشت. وکیل هنوز همونجا ایستاده بود. به طرفش آمد. بازویش را گرفت و او را به طرف یکی از نیمکت‌های پارک برد. بذار چیزی بهت بگم آقای هیلموت. من با این پرونده تجارت نکردم. مثل بقیه دنبال سود هم نبودم. این حق منه که برای بقیه عمرم چیزی پسنداز کنم. چند لحظه سکوت کرد. نفسی تازه کرد و سپس, ادام... سپس ادامه داد. از اینکه این مبلغ رو از شما درخواست کردم پشیمون نیستم. بله من از موقعیتم سوء استفاده کردم. من میتونستم اون زمانی که شما داشتین ویولون رو از دست میدادین مثل یه قهرمان با شما نجاتتون بدم. اما فکر کردم قهرمان بودن هیچ ارزشی نداره و به نظرم اومد که بهتر معامله کنم. فکر میکنم اگر پدرم زنده بود به من افتخار میکرد وقتی میدید مثل خودش در معامله کردن مهارت پیدا کردم. چیزی که در این معامله مهمه اینه که من در ازاش حقیقت رو گفتم. هیلموت همچنان ساکت بود. دوست نداشت با تایید حرفهایش به او دلداری بدهد راشل به حرف زدن ادامه داد گویی میخواست در مقابل یک قاضی از خودش دفاع کند. من خیلی فکر کردم به نظرم مبلقی که درخواست کردم کاملا معقول بود پول نامشرویی هم نبود ویسمن هم که علیه شما اقامه دعوی کرده با این حرفای من موافق بود بابت اون نگران نباشید اون هم در این پول سهم داره و بعد از این مزاحم شما نمیشه با این کار افراد زیادی در این پرونده سود بردن موفق شدیم به وسیله اون وجدان انسانی رو بیدار کنیم و حالا این حق ماست که پاداش خودمون رو دریافت کنیم لبخندی زد و قبل از رفتن گفت همه ما قربانی هستیم عزیزم هیلمود نمیدانست با صدای بلند به او جواب داد یا این تنها صدایی در, صدای در درونش بود که فریاد میزد. بله قربانی هایی که اگه فرصتی به دست بیارن تبدیل به جلاد میشن